سخندانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه پنجم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد على آل الطيبين والطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارض اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يا السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا يوحنا و رحمت الله و بركاته السلام على الائمه الهادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله و ملائكته اجمعین السلام علينا و علی عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام علی التسديقة الشهیده، السلام علی الحسن و الحسين، سيدي شباب رحل الجنه اجمالين، السلام علی علي ابن الحسين زين العابدين، السلام علی محمد ابن علي باغر علم النبيين، السلام علی جعفر ابن محمد الصادق السلام علی موسى ابن جعفر النقادم. السلام على علي بن موسى رضا السلام على محمد بن علي بن السلام على علي بن محمد الهادي السلام على حسن بن علي بن زهين السلام على الحجت ابن الحسن الغائب <تصفيق> سلام علیکه یا عباد الله و الى الارواح التي حلت به سنائك منی سلام الله ابدا ما بغیت و بغی الليل و النهار ولا الله آخر احد منی لزیارتكم السلام سلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین آلال حسین علیه السلام انما خرج کن طلب الاسلام امت جدی قرید ان آمرا بالمعروف و انها ان و سیره بسیرت جدی و عدی ارد کردم اگر عبی عبدالله علیه السلام فرمودن من اراده کردم خارج شدم واقعه کربلا و این حرکت عظیم را در تاریخ اسلام ایجاد نمودم برای اصلاح امت جد من است همان گونه که یک بدن بیمار می شود نیازمند به معالجه و درمان است با توجه به نحوه بیماری به شکل معالجه آن باید پرداخت یک امت و یک مکتب و یک نظام ولو الهی و خدایی ممکن است تحت تاثیر عوامل سودجوی دشمنان دانا و دوستان نادان تحریف شود از مسیر حقیقی خود جدا گردد در نتیجه آن ثمرات و اثراتی که از یک بدن سالم توقع داریم از بدن بیمار مشاهده نمی کنیم از یک مکتب سالم هم اون امید و نتیجه ای را که در تعالیه انسانها در جمیع شعون زندگی فردی و اجتماعی بود ایجاد شود با مکتب تحریف شده نه تنها ایجاد نمیشود بلکه خطر بددینی و اثرات سوء یک مکتب تحریف شده از خطر بیدینی بیشتر اگر نباشد کمتر نیست اگر بند بدنم بیمار است دارویی که برای درمان بیماری به من تجویز شود با فرض به اینکه واقعاً مؤثر بوده و می‌تواند مرا مداوا کند این مشروط به شروطی است که من جمله از آن شروط طبق دستوری که پزشک حاضر داده است عمل کنم دارو را بر اون اساسی که صاحب نظر به من دستور داده مصرف کنم وگرنه مثلا اگر به من آنتی داده که باید هر شش ساعت یک دانه مصرف کنی من سر خود بر اساس تمایل شخصی یا تنبلی یا عوامل دیگر هر 4 قرص 24 ساعت رو در یک ساعت می خورم نه تنها مفید نیست چه بسا زررهای بسیار دیگری را هم برای من ایجاب کند وقتی یک دین یک مکتب آلوده می شود تحریف می شود نه این که نتائجی را که صاحب اون دین وعده کرده بود به مردم نمی رسد بلکه چه خرابی ها و چه آلودگی ها از کانال اون دین تحریفی برای مردم به وجود می آید که قبل از اون دین تحریفی امکان به وجود آوردنش نبود معروف است میگوین در زمان یکی از انبیا یک سیاد بچه های یک آهو را سید کرد مادر این بچه ها به نزد پیغمبر زمان آمد و گفت یا نبی الله بچه های من را اون سیاد سید کرده و من سخت ناراحتم نبی زمان سیاد را طلبید و از او درخواست کرد که بچه های این آهو را چرا سید کرده اید او در جواب گفت یا نبی الله مگر سید اشکال شرعی دارد با شرایطی که من دارم مجاز به سید هستم یا نه مادر بچه‌ها به نبی خدا عرض کرد یا نبی الله من اعتراض به اصل سید ندارم اما این در لباس یک سیاد نیامد در لباس یک از اونجا عبور میکرد من بچه هایم رو گفتم او یک است برای عبادت به دیر و سومعه خود میرود کاری به ما ندارد ولی اگر میفهمیدم سیادت و در لباس سیاد خود را آشکار میکرد من بچه ها مو مخصیمی کردم و پناگاه میگرفتم یعنی وقتی ما مواجهیم با یک دشمنی که آشکار دشمنی میکند در لباس دشمن در مقابل ما میشتد. عوامل مقابله باو را در خود و اطرافیان تقویت میکنیم ولی وقتی ماره در آستین داریم در لباس دوست و منافقانه به درون ما را پیدا میکنند و از درون ریشه ما را میخواهند بزنند این خیلی خطرناک است که همه ادیان در تاریخشون این مشکل رو داشتند اگر من آیاتی از قرآن کریم مطرح کردم در روزهای نخستین بحثمون که خداوند هشتار می از آنانی که می‌خواهند دین رو تحریف کنند منافقینی هستند که خطرشون از کفار بدپرد حواستون جمع باشه این پیشبینی لازم رو بکنی بر این اساس بود اگر پیغمبر به انابین مختلف این تذکر رو به جامعه می دادن. که بعد از من دین من رو می‌خواهند لوث کنند میمون ها می, می بر منبر من بالا روند مهراب و من برای من بازی که دست شیاطین خواهد شد این همه تذکر برای این بود که دشمن دانا بیدار است گله از دشمن غلطه ولی دوستان نباید نادان بمانند دوستان باید هوشیار و بیدار و آگاه باشند و متوجه گردند دوست را از دشمن تمیز بدهند و توجه پیدا کنند چه اواملی و چه افرادی و چه تفکراتی میخواهد مبنای مکتب آنها را از میان ببرد و چه تفکر و چه افرادی مدافع مکتب و مجری مکتب آنها خواهند بود از جمله بحث‌هایی که نیمه‌کارمون در این زمینه بعد از بیان قرآن و بعد از بیان روایات شخص پیغمبر از منابع اهل سنت نظر دو شخصیت برجسته صدر اسلام به عنوان ناظر بر صحنه و شاهد بر این آلودگیها، یک حضرت زهرا سلام الله علیها که دیروز مختصری اشاره کردم دو امیر علیه السلام که فرصت نشد دو قسمت از نهج و یک خطبه شخصیه قسمتیش رو دو نامه شماره 62 و دوی که امیر المؤمنین به مالک اشتر دادن وقتی مالک به سوی مصر میرفت برای مردم مصر ببرد غیر از اون فرمان معروف مالک اشتر است نامه ایز خطاب به مردم مصر که توجه به اون نامه را هم ارکاهم کرد که از چه جهتی اهمیت بیشتری دارد؟ عریقم خار و عدید دلسوز و پدای دین است به نقل نشیع حتی سنی وقتی پیغمبر بیان میدارد در روز خندق از طرف خدا این بیان صادر شد ذربتا علی یعنی یوم الخندق افضل من عباده سبعين جبرائیل فریاد می‌زند: لا فتا الا علی لا خیف الا زلفقار پس جوان مرد و مدافع دین و قمخار مذهب و مفسر و مبین قرآنی از امیر المؤمنین ما بعدد پیغمبر نخواهیم داشت حال بعدت رحلت پیغمبر این علی زمان را چگونه تعلیل می کند؟ امیر در خطبه شقشقیه می فرماین اما والله لقد تغمس اولانم و انه اول يعلم ان محل من ها محل القطب من الرها ينهدر عن السيل ولا يرغى الى اي طير حين اشاره کردم پیران خلافت را به تن آن فلاني که ميدانش موقعيت و شرايط من برای این به مانند اون میله بین دو سنگ آسیا که اگر این محور را برداشتید و این قطب اصلی که باید بگندی این قطب گردش صورت بگیرد این را از میان بردید این سنگ ها حرکت نخواهند کرد و میروی محرکه به جای مفید بودن مذر می شود اشاره کردم آنتیبیتیک رو با بخورید که بدن شما رو خوش کنه اما وقتی شرایط لازم خود رو ندار مزر شما می شود یعنی خلافتی که جانشینی پیغمبره و باید دین پیغمبر رو تفسیر کند تبین کند اجرا کند حقایق شو به مردم بشناساند آملی می شود برای استثمار برای استهمار برای بهره کشی غلط مگر نکردن بنی امیر و بن الاباد که بنگرده مردم به نام دین نشدن و به نام دین هرچی خواستن کردند لذا امیرالمومنین نیبر میاد اگر نیروی محرکه دین که خیلی نیروی قوییش چون با فکرت انسول ها کار دارد نهاد انسان را به حرکت وامی دارد اما این نیروی محرکه مثل اون فشار آب و برق و بادی که شما ایجاد میکنید تا دو سنگ آسیا رو به گردش در آورد سنگ روی این رود رو روی سنگ ثابت زیرین به گردش در آورد به جای گردش مفید و مثبت مخرب میشود اما نیروی می مؤمنین در ادامه میفرمایند من در چون این که قرار گرفتم ستدل تو دونه ها شوبن و طوی تو انها کش ها من در یک شرائطی قرار گرفتم دستم رو کشیدم کنار نشستم پیراهن خلافت و از پن خودم درآوردم و تفق تو ارتعی بین ان اطول به یدن جزا او بر الان تقیتن امیا خودم رو در یک همکه شرائطی دیدم با دست برید دست تنها دست خالی و یک فرد در و تنها مونده برخیزم یا صبر کنم برخیزم من تنها چه بکنم بر نخیزم صبر به چی بکنم صبر در مقابل یک امر سختی که یحرم فی الکبیر و یشئ فی حسبیر اونقدر این درد دردناکه که یک کوچک در اثر قصه نسبت به این درد پیر می شود و یا آن بیانی که در ادامه می فرماید فرعی تو انت صبر علا حاطا اعجاب و سبر تو و فلعین قضا و فلحلق شجا دیدم چاره جو سرب نیست، پس سرب کردم در حالی که اصطخان در گلو و خار در چشم داشتم آقا شما میگید این حرفا رو بعدا در آوردن معذرت میخوام میگم شما خطاب اونهایی که می نویشن. این روزات و روزنامه ها ما میخونیم و کتابه هایی به این نام چاخ می‌شود و فرق می‌گردد که شاید خیلی از سماها دیده و خونده اید. آقا در صدر اسلام همه این حرفان نبود قبول داشتن خلافت رو تأیید میکردن شیعه احساسیت نشون میدهد تأثب به قرض میدهد صفابیه اینها رو دامن زبه بعد عوامل استعماری خاصه اینها رو تقویت کند در جامعه جامع شخص دیگر را در سندش می توانید خط کنید مگر شیخ محمد عبدو مفتی حل این نهج البلاغه را تفریه او چاپ نشده مگر همین نسخه نهج البلاغه که آن دست بمند تفریه دکتر صبحی ساله سنی معافر نیست اونا بمیتونن که تمام این حرف بکنن ابن عبدال حدید سال قبل معتزلی مذهب وقتی شرح بر نهج بلاده می به این خطبه میرسد رسد چه میگوید اگر وقت شد که خواهم گفت چرا یا اطلاع ندارید؟ یا مقرزان میخواید سخن بگی یه مقدار ریشه ای برخورد نمی کنید؟ زهرا سلام الله علیه دیروز روز اشاره کردم نه تنها فریاد اعتراضش نسبت به جو باطل غلط زمان بلند بود؟ امیر المؤمنین علیه السلام هم چون زهرا و او چنان فریادش بلنده میگه من در یک شرائطی قرار گرفتم اون قدر این درد دردناک بود که جوون و پیر میکرد کنایه از این شما یه وقت میگید آقا موامو تو این قصه کردم علی محبوب میگوید من تیر شدم از قدسه ای که برای جامعه اسلامی دیدم این چی بوده؟ انایت به این نکته بفرمایید درد یک بزرگ و اندازه اون بزرگ درده درد یک کوچک و اندازه کوچک درده اگر من ظرفیت ندارم پخدگی و صبر و حوصله و تحمل ندارم ممکنه یک مشکل بسیار کوچکی اونقدر مرا به زانو در آبرد. در اثر زهد و عدم قدرت روحی قدی بگم وامو سیبتا. شما یه مقداری که دقت میکنی چه خبرتی چیز یه اینجوری پیش اومده اینم حضر میشه انقدر انسان خودشو نمیبازه اما یک شکریتی مثل علی چه صبری داره علی در جنگ او منوشتن وقتی فرار کردن در رفتن پیغمبر رو تنها گذاشتن علی علیه اسلام با تنی چند اون چنان پیغمبر حمایت کرد که جبرائیل بین آسمان و زمین به پیغمبر ندا بدهد ناد علی یا مظهر الازائه تجد و اونن لکف نباه شبز و پنج یا اشتاد و پنج زخم علی برداشت که بعد از جنگ اوزای به پیغمبر گفتن یا رسول الله با زخم‌های های بدن علی چه مو هر جا رو می جای دیگه گوشت بدن علی را می افته پیغمبرتش رو آوردن دستی رو بدنش تشیدن هم به عبرون نیاورد علی علی صبرش و حدیف وقتی شمشیر امر ابن عبدالبود فرق علی رو شکاف بعد شمشیر ابن مالجم بر همون شکاف ضرب وارد می کند نمیگه آخ میگه فضل و بر آخه راحت شدم خوشحالم پس این چه دردیه بعد از پیغمبر در جامعه اسلامی که علی میگه نفله به معنا کنم منو پیر کرد خون به دلم تو خون تو گلون بود خار تو چشمم بود می سوختم و می ساختم و رنج می بردم. چی بوده این قضیه؟ خودش یه مقداری داره باز ادامه میده. چی بوده؟ حضرت می فرمایم عراب فرانحبی حتی مزل اول سدیلهی فه از لابه ها فلانن بعده به هر حال فا اولی کارش شد شده اینو برگزار کرد برای دومی چون جایی خودش نشون. فیا عجبا نحضر بلاقه هست برادر آبو خواهران فیا عجبا خطبه سبوم نحضر بلاقه خطبه شخشقیه ای وای چقدر تجربا <تصفيق> بره بینا خوبه ید قبیل آفی حیاته از عبد آل آخر بعد و فاته میگه عجب تا جنده بود جانواز میکشید میگفت چه کار کنیم ما که نمیخواستیم تکلیف شرعی ما شد وزیثه خدمت به مردم داریم مردم اصرار میکنن ما هم از باب اینکه خدمت به مردم بکنیم احساس تکلیف کردیم و این پست را قبول کردیم عقیلونی و عقیلونی و نفستو به خیرون من و علیون فی کن خودش خود که در این میگه عقیلونی عقیلونی من رو را کنیم و لفتو به که را من که بهترین نیشتم و علیون فیکنم آقا عقیلی که هست اما شما اینو رو میگفتی هستم یا عجب اینا رو میگفت. ولی کار برای که دیگه فراهم کرد بعد خود عزت می که میدونین چرا این جمله عزیبه لشد ما تشد ترا ها چه محکم دست به دست هم دادن که از این تسلان شیرده به کمک همدیگه شیر بنوشن یعنی به تحبیل فارسی به همدیگه نون قرض میدادن تحبیلش این میشه عجب چه با همدیگه توانیهایی کرده بودن حدی میگه اون وقت من اگر به طبع مولایم علی بگم او فرمود استخون تو گلو دارم منم بگم علی جان برای همدردی با تو میسوزم که در جامعه اسلامی چه ضعرض ایور ایکر ای اسلام وارد کرد که حرفها را استعمار دروست کرد پس را علی را استماگر میدانید. <تصفيق> پس معلومه تو یاد دشمن دانایی هستی در لفافه دفاع از امت اسلامی و به نام رشد جامعه کلمات ذهن خورکن عوام فریب میخوای حقیقت رو پرده بماند همان گونه که زهرا فریاد زد چرا حقیقت رو مخفی میکنید کجا فریاد از زهر سلام مولدی ها؟ در آمون خطبه فدک نگفت؟ در خانه مهاجر رفت انصار رفت در زد چکر چکر بعد خطبه رو یا معشر الانصار و المهاجر ای سران مهاجر انصار انتو نص با امرهی و نحیه و حملت و دینهی و وحیه به خدا این جمله یادم میاد خدا یاد تو میدونی لرزه بر من قالب میشه؟ انتون مثل و امرهی و نحیه و حملت دینهی و بعده آقا شما پرشنداران دینی شما مسئول نسل بعدی فردای دیامت یه نوجوان و یک جوان که من و توی یک مقدار مستن کر نگفتیم اطلاق نکردیم تعلیم ندادیم نفهمید میاد یقیقی ما رو میگیره پدر مادر معلم چرا حقیقت رو ما نشون ندادید و نه فرزندان ما نسل اسلامی حفدار فردای قیامت به آنانی که می تعلیم بدهن و روشنگری کنند نکنند فردای قیامت از آنها شکایت کنه و لذا علی علیه السلام فرمون خدا قبل این که از جاهل معاخذه کند چرا یاد نگرفتی عالم را معاخذه می کند چرا یاد ندادی علی داره فریاد میزنه دو دوتایی دست به دست هم دادن این تستان شیردار رو برای همدیگه که به کمک همدیگه بدوشن تسیره ها فی حوزتن خشنا یقلت مها و مسها و یقشن لإثار فیها والإعتذار منها و صاحبها تراک آقا ازی روشن‌تر دیگه, روشن دیگه فضاط و مدتی در سودا saham دادن، بندگی فستانو بدوشن. حالا نوبت به کثی رسید یک آدم خشن بد برخورد غیر منطقی نقل معنا کنم غیر منطقی بی اطلاع مثل یه سواری که حالا سوار بر مرکب شده. اینجا این کنایه رو به خزای شطور سواری اون زمان من مرکبرانی این زمان نشاد بذارم. آقا یک خلبانی رو در یک هواپیما قرار بدید. از خلبانی چیزی نمیداند. سردارشت حالا چه میشه؟ حالا با ثابت روشن. یه راننده اتوبوسی رو خوشا فرمون اتوبوس بنشونید که رانندگی نمیدانه شما برای این اینکه یک نفر اتومبیل رو برانند در نظام امروز عالم امتحان گذاشتی. امتحان کنی که خیلی امده کش میکنه میتونه رانندگی کنه و گرنه جان مردم در که هم ممکنه آبره پیاده رو بکشم هم خودشو بکشه هم سرنشین رو بکشه لذا سخت نمیگیرند درکت میکنن نه حالا بلنده با مهینامه مثلا کارتونی شخصی معمولی رو گرفتی میگا بندم می خم اتوبوسم در آنم نه خیر بادبینه پاییکه یکم امتحان بالاتره و سختتر امتحان کنم. مطمئن میشم اتوبوس رو درست بدم. اگر نه خداوند وقتی میخواد جامعه رو یک امام بده مگه در قرآن نمیگه و ازه تلا ابراهیم رفته به کلمات فعتمهان قال اینی یا و کلنافه اماما ابراهیم امتحان کردن چون این خیلی مهمه سرنوشت جامع رو میخوام به دست خلیفه و امام بدم و اتمام هم امتحان رو هم خیلی بالا بردم به مرحله نهایی امتحان رسوندم وقتی کاملا معلوم شد که ابراهیم آن امتحانات رو میتونه فیروزمندانه گفتم انی جائل و کل اماما با اینامه خلبانی امت رو به توی ابراهیم دادم علی میگه میدونید مهار شطر را به دست که دادن بعد از بیغفر به تحبیر امروزی بگم خلبان رو کی گذاشتن اون که نمیتونه سطحی مرکب رو برانه یا میکشید این و انار دهن و دمازش رو زخم کرد یا خب که خسته میکرد از بالا این داختایی این رو عذاب تو خطبه شخصیقی میگه می نه خودش دونست خوب سوار بشه بره جلو نه مرسب رو یعنی امت اسلامی رو م... میرون در جا زد. حالا ممکنه چقدر سادگی دوستان باید دانا باشند ما قولی حرفا رو نمیخوریم کتاب بندیسند آقا بی انصافی نیست مگر در زمان همین ها نبود که اسلام به مصر رفت اسلام به ایران آمد اسلام به رو... کجا و کجا رفت بسیار خوچه ضد مثال یدید بزرگی بگم چقدر قشنگه یک عالم اخلاق و یک عارف واقعی شاگرداشو وقتی میخواد تربیت کنه میگه نمبند نبوشینا قشر حالش در داد موعظهات نوشته نمبند نبوشینا مثل تخم مرغ خیلی مثال قشنگه میگه تخم مرغ الان در حالت عادی شما یه تخم مرغ در نظر بگیرید خب یه شیئیه که یه مقدار مواد غذایی داره مفید آدم میتونه از این تخم به عنوان یه چیز غذایی استفاده کنه اما بالاتر ازی می‌تونه بشه بعد یه پرنده یه مرگ پرواز کنه خودش تخمره های دیگه ایجاد کنه جوجه های دیگه پس میتونه بالاتر از این باشه خب چه کنم بذار زیر مرگ بذار پره، اون پردرش دهنده او رو زیر بالتر بگیره اما به کامل نیم بند نه پنزه رو زیر مرگ بعد اینو از مرغ جدا کردی چه میشه؟ نه تنها و توخ مرغ اولیه نیست که بتونید نیم روی ازش استفاده کنی مرغ جوجه بعدی هم که نشد میگنده بوی گندش هم عذیت میکنه باید بندازید کنار این سنها در حالت عادی خواب افرادی کار زندگی خود شدارن میرن جلو اما به کجا میتونن درسن در مکتب اون مرغ پرورش دهنده ای که اینا رو زیر بال و پرش بگیره خدا به پیغمبر در قرآن میفرماید وقت ف جناحک لمن تبعك من المؤمنين وقتی که به تو میارند و روی زیر بال بگیر، زیر بال گرفته میشه سلمان، زیر بال گرفته میشه ابوذر، زیر بال پر علی و آل علی قرار گرفتن، حزه‌ای است که زیر بال زهرا قرار گرفت، به کجا رسید که یک مرجع، یک عالم، یک فقیه، یک مرد همجه، از همه از همه جهات کامل مرحوم آیت الله کمپانی بگوید مستقرا روی از در او به هیچ سوی زن که مثل وجود را سجه او چلا کند مفتقه را روی از در او به هیچ سوی زن که مثل وجود را تجزه او تلا کند یعنی این جوق تخم مرغی که زیر بال این مرغ گرفتار اون قدر روش یا که حالا خودش هم میتونه جوق مرغ های کوچولو تره بیاره تبدیل به یه حدی از پرندگی بکنه خودش که صحنش اجله خب وقتی نیم بند شدن اسلامی که بنا بود سلمان و ابوذر سازد اسلامی بسازیم در مه که خلیفت قصداندارت امام جمعهت امراض باشد یه همه آنتیبیویتیکاییست که به جایی اینکه شرکان رو خوش کنه بدن رو می میرانه چه بلایی امراض پسر جامعه اسلامی ها بود که سکت میکردم میرسم ملال و محل شهرستانی را آورده بودم بکنم نمیرسیم حالا روزای بعد میرسم می که چی کار کردم به خدا قسم به انحراف و سرکشی و هی رنگ به رنگ در اومدن بنابود دین مردم رو سبغه الهی در قرآن میگه سبغه الله و من احسن و من الله سبقه. رنگ خدایی بگیریم اگر هر روز هر لحظه به رنگی و تأیار بر آمد امرو این رنگ فردا اون رنگ رو پس فردا اون رنگ رو میفذیرم این دلیل برچیه من صبح و فکری و ای و باوری ندارم میگن ناصر دیشا یه روزی حالش خیلی خوب نبود با آجفزش کف امرو غذا برای من چی درست میکنی حالم خوب نیست ققررب مرغ براتون سرخ میکنم مفید است چنین است چناات با م که آافمرغ که سرخ کرده برای حال من مناسب نیستگاه قوربان مرغ سرخ کرده بسیار بده واقعا بده جدا بده نباد خرد قیمه بادیم جون درست میکنم مفید برای شما خیلی مناسب گفت م که تو که میدونی من بادیم جون دوست ندارم با قوا بادیم جون که خیلی بده آدم نباد بخوره. این چیه یکی گ چی شد شما هر لحظه گفت من نوکر بادیم جون و مرغ نیستم نوکر اوم چی خوبه تی او بهگه خوبه فکر ندارم این اندیشه ندارم. انسانی که به رنگ هر کسی در میاد چون رنگی برای خودش نفذیر افتر اما کسی که رنگ خدایی گرفت رنگ دیگری میفذیره برای اینکه بالاتر از رنگ خدایی مگر رنگی هست من در حد مثال کار خودم مثال بزنم اگر ما به یک دانشجوی دوری دکترات و دو دانشگاه بگیم عزیزم اگر خوب درس خوندی اگر جدییت کردی من به دانشکده به شما یک لیسانس بده Okay. به من نمیخندن. او که پله بالاتر رو داره. تو میخوای پله پایینتر رو بهش بدی. اگر راست میگی بالاتر از اون مرحله چی داری که بده که به عشق اون مرحله بالاتر پایین پایینتر رو راه کنه. کسی که رنگ خدایی گرفت، بالاتر از رنگ خدایی چه میخوای براش معلن کنی؟ اجازه بدید ولو طول میکشه من یه اشاره عقلی استدلالی برای این مساله داشته باشم. آقا در هر حرکت مقصد حرکت را چه معین می کند؟ محرک در هر حرکت مقصد حرکت را محرک معین می کند مثلا الان این جعبه دستمال کاغذی که دست بنده است من این رو پرتاب کنم یا آگاهانه آلمانه دارم این کارو میکنم یا جاهلانه مقرزانه احساسی جاهلانه مقرزانه احساسی کردشی نداره هیچ اما اگر آگاهانه دارم اینو فتاب میکنم میگه یه فرد آگاه منظورش چیه؟ مثلا فرد کنید میخوام بدم به آقا با هم هم خیلی خودمونی هستیم رو درباتی هم نداریم حالا اینو فتاب میکنم ایشونم میگیرن. ف... ف... مقصد ا حرکت را منی که محرکم معین کرده هست این یک مقدمه مقدمه دوبار هرچه محرک آقلتر بالاتر پرزندتر خوشبندتر پر باشه مقصدی که انتخاب می‌کند، آن اون مقصد مهمتر، ارزنده‌تر و برجسته‌تر. بنده امروز از صبح تا شب چه مقصدی برای کار روزمره و حرکتم می کنم انتخاب می‌کنم. به اندازه فهم منه یه وقت مقصدی انتخاب کنم شما منو می کنید آقاستون هیچه یه صبح تا شب عمرت زایی کردی برای چی؟ مقصد بهتر انتخاب کن. پس هر چه محرک بالاتر باشد، مقصد ارزنده‌تر است. سه. محرک کل این عالم کی؟ خدا آقلتر حکیمتر از خدا که داریم هیچ. مقصدی که خدا برای حرکت کل عالم معین کند باید بالاترین هدف باشد بالاترین هدفی که مقصد کل برای او باشد چه می تواند باشد؟ خود خدا نظاه نازالله و انا الیه راجرون یعنی هر کسی در این عالم در حرکت جز به توی خدا حرکت کند حرکت و مرحله مادونه بشن و از نیشون میکند و ها شکایت میکند گفت و نیش روح پاک آدم هست در اون دم زنده از نفخ دم است تا در این عالم به فرمان خدا از نیستان حقیقت شد جدا هر دم از مبده حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند قطره چون افتاد از دریا جدا می کند دریا سوی خود ندا گرچه افتاد گاهی اندر خاک و خون می که نا الیه راجعون اگر هدف ارزنده در عالم حتی در اساس درک بخواییم معین کنیم والا تر از خدا چیزی نمیتونه باشه مکتبی سالمه که ما را به خدا برساند علی میگه این حدث مکتبو از میان بردن مردم رو مبتلا کردن به اون انحرافی که منیان ناسو لامر الله به خط و و تلونن و اعترافن یه فرده مهاویه یه فرده امرهاف یه فرده یدید یه سر... این که انسان الهی نبود انسان الهی است وقتی بهش میگن چی میخوای میگه خدا میگه دین اومده بود این کار رو بکنه ولی اینو از دین گرفتن از این ضرر بالاتر شما میخواید تا از میگه و سبر تو طول المده تمام مدت دو گمیران ساب کردن بازم خون دل خوردم و شد ذلم احنا شغا طریمان را جواب داد چرا سخت بود این مشکلات رو تحمل کردم حتی اذا مزال السبيله جعلها في جماعت زعم انی احدهم اي وای یه جایی که اونم رفت اما جعلها ها برمیگرده به تغنصه ها کنی یعنی خلافت رو قرار تا خلافت رو در یک جمعی یعنی شورای شش نفری فزعما زعما انی احد خیال کرد من هم که یعنی منو آورد از دهر تنزل سو منزل حتی یغار معاویه سو ما علی در شرحال مرحوم میرزای پومی صاحب کتاب غوا اینو مرجع تقلید معروف و عالم بر جسته شیعه در عطر فتلیشای گاجا انقضی این مرد بزرگ و آزاده بود که میگن فتلیشای گاجا رضو استفتای کرد که حضرت آیت الله من وقتی روزه میگیرم عصبانی میشم حکم غلط میدم ممکنه یه بیگناهی رو بکشن حسی اجازه بدید من روزه بخورم که نکنه عصبانی بشم یه بیگناهی رو بکشم هر چه کار لازم باشه بنده تقدیم میکنم در جواب نوشتم که حکم خدا قابل تعییر نیست ولی سلطان را میشود وابسته کرد شما کنار روید اون کسی که روزه و عصبانی نمیشود او بیاست سر, سر کار قرار بگیرو بیاستم چه آدم آزاده ای بخاطر پادشاه قاجار اینجوری مرحوم میرزای قومی رو به خودش متبط کنه برای اهداف شخصیشون پیشنهاد داد به میرزا بگید که من میخوام دخترم رو به پسر شما بدم درشتن در حالات میرزا مرحوم میرزای قومی شب رو تا سهر به گریه نشست گفت خدایا نکن از کانال این پسر من بیچاره بشم اگر بنات دین من به خطر بیفته پسر منه بگیر پسر جوان مرد شد مرح. خدا دارد. تو رو به جان عدی عبدالله تو رو به جان فاطمه زهرا، تو رو به عشق چشمان زینب کبراه قسمت میدیم دین ما را از ما مگیم اواملی که میخواهن با اتدت رفتن دین ما شوند قدرت ایستادگیه در مقابل اون اوامل رو به ما انایت نفرمان این نیزای قومی در حالاتش نوشتن وقتی در نجف اشرف درساش تموم شد اومدگیران رفت تو دهی که در اون ده اهل اون ده بود دیده بازدیری کنه به بستگاهانش سری بزنه برگذره بیاد قم مثلا در سابه اصم شروع کنه توی ده یه نفقالی شبا تو قراره خونه نفقالی خیال کرد رقیب پیدا کرده راوی از نادانان مردمن در حसरत فهم درست اینکه میگویم به قدر فهمت صد نغاله خواست که یه جوری بود آقا را از صحنه بدکونم رقیب برای من درست بشه مردم گفتم مردوم که آقا سواد نداره گول شرخ خوری داده به قالا پرده شد یه جوری میان تو جلسه ای که آقا ام بهش بگید مار بندیشه از جمعیت آمدی سواد است جمعیت گفتن حضرت آقای مار بندیشه گفتن خدا بی خبره شما جا برشون می معرفو و اینا خدا آقای ماری کشید خیلی با دومه کشیده و زبونم از دهنش در اومده و نفکاله و مردم و کدوم یکی سری نوشتیم کار راست میگه این آقا بی سواده پس تو نجف بیل معتل بودی بور بیرون آقا که مرهوم نیزای غمی اسمش هم عوض کرد و میگذاشیم گردی بس که ما شد اضافت کنندگان چی ها باشند؟ بی سوادان نتیجه چه می شود، ارزنده ها باید کنار برن همون گونه که امیر المومنیتون از البلاغه شراحال مردم جاهلیت رو بیان میکنه. کنه زرع الفجور و سقاوه سرور و حسد و سرور و ارزن عالم ها ملجم و جاهل ها مکم عالم دهانش به جان گذاشته شده جاهل گرامی داشته میشه. حضرت در اینجا می فرماین وای که منو در ردیز کیا قرار دادن حاله زوبه عثمان عبدال عبدالرحمن او سهل وزقاف بعد میگه غیال لال شورا ای خدا از دست این شورایی که علی رو به کجا کشنده علی مینابتونه عجل بلاخه اون وقت آقا مثل اینه که بنده یه جایی نشستم یکی از این بر کار به من میزنه یکی از اون بر یه به من میزنه یکی سوزن تو چشونم میکنه من میگم آخ و من میگم چرا میگی بگو کارد نزنن من آخ نگم کارد به قلب امام زمان میخوره و حرفهای خلافی که به نام دین همین دیروزی که از علماء شمران به من زنجد یک جزوه برای من آخوند پیر مرد موسین فرستادن با امضا که آقا تشری و دروند شما بگو این بخوند اینقدر جسارت چرا خوابیم جوان مطالعه کن از علی حمایت کن از حسین دفاع کن خون امام حسین رو بیان دنیا دیشه شیعه هر ساره میخواد در دین ما شیعه تفرد ایجاد کنه گاهی به بهانه صفوی علوی گاهی به بهانه اینها تخریری است گریه کرده گاهی به پارسال من تو اون جلسه شباهمو مفصل این بحثو برای دوستان کردم قران میگه گریه پیغمبر میگه گریه خدا دستور میده برای صفای در جای گریه گریه در جای شادی شادی, شادی. شما بعد از این همه مطالب در کتاب در سنت 14 میای بعد از 14 درد این همه فعالیت ولی وقتی آقا لیوان خالی بود هر چی تو شیخی قبول می‌کنه و جوونی که تو جلسات ما با کمال شرمند من افتخار می‌کنم سینه بزنم اشتباهش افتخار می‌کنم رو بخونم و به خدا قسم چند وقتی هم که می‌ذره یه وقت گرفتاری درس و بحث و دانشگاه و فرصت روزه نداشته تو راه نوار روزه می‌ذارم تو متواضع گوش کنم یه مقدار پیوندی بابا عبدالله فیدار کنم اما جوان فقط سینه زدن نیستا فقط سیاه پوشیدن نیستا افتخار میکنم سیاه پوشم سینه بزنم اما فقط این نیست از این سیاه پوشیدن ها از این زدن ها یاد رو مکتب امام صادق رو هشام جوانه بیست و چند ساله، از راه میاد امام صادق توی کلات چار هزار شاگردی تمام قد بلم میشه بیا بیا وقت بشین بشیم بعضی هم بگ حلیبی جبونه اترام میکنی فرمود زبانش برای من چون شمشیر مالک اشتر برای علی دید علی مالک اشتر زمان علی چی کار زمانی بود که وادی می جنگیدان اونجا نیازونده به مالک اشتر با شمشیر بیاد میلون زمان امام صادق چی بود؟ مکتب تراشی تحریف دین مکاتب صحیحی درست کردن دینو رو کردن اینجا مؤمن و تاپ پیدا میشه اینجا هشام پیدا میشه اینجا زراغه و محمد ابن مسلم پیدا میشه و این گونه رو نشون میدن لذا همین مؤمنین فرمود واید این شعورا که چه کردن یه سیکه های چو ازمین کنن یه مقداری ممکنه وقت بگیره میخوام یه سیکه از نام شخص دوران براتون بخن میفرمایید تا اینکه بالاخره انتخاب کردن. اون سومی رو که ال انقامت سال صلحقام تا اینکه سومی او مردم هم اومد سومی از تو اوجا مسلط شد قبل هم به سال برجیبی داره و. ناحجن نافزن یک کم برآده پرخوره شکم پرست ما علی داره میگه آقا به من گفت یار ندان با شیعه علیان علی میگه فکر شو که دینتونو لوث کردن شکم بارگانی که بر مبنای سیر کردن شکمشون بین نسیل ای و مختلفه نسل چه سنخ ده کتاب لغت نگاه کنید بذارت میخوام مطفوی رو میگه میگه اینقدر کم فرست بودن از این پسیه های ایوانم هم نگذشتن این کنایه از اینه که حتی چی گیرشون میومد میبنیدن حسین دارستون حتی بلاقه میگه و این خب میدونید اطرافی های عطمان اومدن بر اوزا متلط شدن و معتله و چراگاه زمون مال الله حزمتن اوله نکتر ردی خانواده های پدریش این بنیومهیه بنی خانواده های پدریش با او ما آوردن به بیت المال مسلمین مثل شطورایی که مدت ها توی طویله اینا رو بستید حالت خوش خوردن زمستان، حالا بهار شده یک مزرحه سبزی رو دیدن خودشونو می دازن توی این مزرحه سبت بین چه دارن می آقا بنده که گفتم قرآن میگه امت رو س امت رو منحرف میکنن امام حسین میفرماید میخوام اصلاح کنم پیغمبر سر دین منو لوس می‌کنن علی که نابر سرنه اینا رو گفته حالا ممکنه شما بگید آقا خب از علی را بوده آقا چون خیلی واقعا خیلی از کسی حرف بزنه اما در اینها بذارید یه مدرک ما سنی بخونم غیر از این منبع شیعه براتون وقتی کم میارم با اجله میشم تاریخ تبریج جلد دو صفحه 440 و چهل. خب فن میدونن تاریخ تبریج چه نومنده است جلد دو صفحه 440 طبقات ازن جلد سه صفحه سد الامام طباطبایی السياسة ابن قتیبه دینوری متوفی 276 هجری قمری از برجستگان اهل سنت این کتاب دو جلد از هر کرده و چاپ شده صفحه شش جلد یک جلد دو کنزل امار جلد سه صفحه 136 کنزل امار والمتقی هندی معروف و خیفی هم قابل تکیه برای احسان نه جلد سه صفحه 136 اولین سخنرانی ابوبک بعد از سقیبه بنی ساهده تو مسجد پیغمبر بالا منبر چی بود؟ این ابو جلده یکی که شروع کنم سهلی بود مهم باشه بی اولی ها پیغمبر از دنیا است، خلیفه درست شد حالا اومده رفته مسجد همه گوش ها از همه اول داره آب پاکی رو دست را میریزه افت هزه نون این اعملو سیکم به رسول الله افت هزه نون آیا گمان میکنید اینی من عمل و عمل می کنم فیکم در میان شما به سنت رسول الله و اون شیوه پیغمبر ازن لاغوما به ها نه من اینجوری نیستم آقا مدرک کندم من رو سنید ازن لاغوما به ها رسول الله کان یعصم و بلوحق تیغمبر بهش وحبی نسید محسوم بود و کان معهوم ملکن ملک خدا با او همراه بود و این نبی شیطانا یعقرینی من شیطان هم رامه یعنی از اول دارم آب پاکی رو دست رو و ما نفسه ها داریم ما بخوایم زهراب رو کشیم ما بخوایم زهراب رو کشیم کنیم ما بخوایم گنداغی شش رو دست ب ما میخوایم سر بریده مام حسین رو از این شهرها و اون شهرها ببریم بله نقشه بود وضافت اینم سلام الله علیه ها میگه بالای شطوره به رهنه میلشیدم و فریاب میزنم تا مردم بدانن آی تاریخ این ها میخواستم دین جدم از بین ببرن من فریاب زدم سر بریده یه من بالای نیزار دادیم تا شاید یه نفر بیدار بشه و شدنده وگرنه نه امروز اسلام همین بود و این شیطانن شیطانم یا آخرینی مرا شیطانی است که بر من آرز می شود این نما انا بشرون و لفتو به خیر من احد من کن من یه بشرم من که شما نیستم من اون خیلی کارا ممکنه بکنم فراعونی شماها من راهنمایی کنید شما ها منو راه نمایی کنید چه اداره ایچومونی اصفق امسان و اگه دیدید خوب دارم میرم دنبال من بیاید. و این رأی ایچومونی زغتو و قضبمونی اگه دیدید کد رفتم منو ادایت کنید بسید اشتباه کرد چون از ممکن اعتراضات شروع بشه فوری دنبالش به چی گفت تاریخ تبری امامت و سیاست طبقات ابن سرد کنزل اممان همه می بیسن بعد از این گفت ازاره ای چومونی قدر صبح و چتنبونی. اما اگه دیدید هی دارید به من اعتراض میکنید من عصبانی شدم به تفسید آفه در در, در میرم آن اونم بگم این از اول برام آب خواتی بودت سو میریزم دیگه نامه 62 رو, رو نمیدستم اجادوری نامه 62 رو فردا اگر عمری باشه بخونم پس امیر و داره شرایط و بیان میکنه اینجوری. نمونه از تاریخ برای سو خوندم که خودش رو رو از روز اول اومد آب خواتی بودت سو آقا ما بناس به نام دیم بیاییم خیلی کارا بکنیم این اون جناحه حالا این جناه چه میکنه جناح از همو از ظلم نشون بده پیغمبر عمدن عمدن به معنی هدف الهی نه یعنی عمدی بی منظور عمدن رسول خدا هی جلو مردم امام حسینو میابرد دیر گلوشو رو می گرگه میکن غیره از اینکه واقعا گریه داره اما اینم ای به رخ میکشید ام سلمه میگه زهران الله لالیها درد زایمان داشت پیغمبر پشت در عتاب چه قدم میزد میرفت می اومد بیچاره می‌گفت هی میگه می بچه به دنیا نیومد پیغمبر خدا لولا ما خلق اولاد چه چیز هر چیزی برای پیغمبر معنایی چیه که اینقدر میگه هی ای، گفتین یارو سوره قم توا بچه به دنیا اومد بدید من کو بچه به دنیا اومد تا چه پیچیدم دویدم تا من بیان بیرون پیغمبرم از اون ور دویدم بچه رو اون داغر از من گرفت تا گرفت دیدم یه سره کوچولی حسین آورد بالا چشورش بود حسین منی من و انا من حسین الله من احبه حسین هم. حسین منی من و انا من حسین الله من احبه حسین هم. گفتم که یا رسول الله و ای که تازه به دنیا اومده کردم گریه نمیتونه چی شده شما گریه میتونیم فرمودان چی که من میدونم و مثلا مستونه میدونیم سالگرد ولادت امام حسین پیغمبر تو یکی از جنگ ها مشغول جنگ بود میدان هر جنگ بود خدا در حلوق درجات و مرحوم علامه امینی بیفت در این کتاب عظیم و پرعرض سپرعرج سیرت رو و کنندتان ها ناغذ میکنه یه دفع جمعیت دیدن پیغمبر شمشی و گرفت کنام از جمعیت جدا شد یه گوشه ای شمشی رو در زمین فرش چسبون به شمشیر شروع کرد هایی گریه کرده، جمعیت فضل کردن اومدن دور پیغمبر رو گرفتن یا رسول الله گریه میکنید یا رسول الله چی شده سرمود از آن جبرائیل بر من نازل شد گفت یا رسول الله یادت سالگرده بلادت حسینه گفتیم آقا جون مگه سالگرده بلادت حسین گریه داره فقط اون چه که من میدونم اگه شما میدونستید بله شما چه میدونید یا رسول الله فرمود جبرائیل به من نشون داد اون لحظه ای در آشورات که حسین شمشیری زده زمین همون حال که پیغمبر به جنگ خاص بده پیش چشگنده به قبضه شمشیری و یه نگاهی گاه زیر چشم بی گاهی با اونور و گاهی سرو بلند میکنه میگه هل من ناصر به جای اینکه کسی جواب به او بده از هر کار از سر تو پیغمبر اینا رو به رخ بکشید که این مردم بدانن همین امه سلمه میگه. من از پیغمبر شنیدم پیغمبر یه اتاقی داشتن مخصوص نزول وحی بود. هر وقت داخل اون اتاق میشدن کسی هر نداشت وارد اون اتاق بشه. پیغمبر فرمودن کسی نداری بیا تو اتاق. این یک دستور پیغمبر. دستور دوم پیغمبر فرمود اگر کسی باعث گریه حسین بشه من از او راضی نیستم. نکنه امام حسین رو گریه در بیاره. اینم دستور دوم پیغمبر. میگه پیغمبر چون اتاق مخصوص نزول و به نشسته بود من دمه در نشسته بودم حسین کوچولو از لار رسید دوان دوان بیاد برسون اتاق چون پیغمبر فرموده بود نداری که بیاد من جلوشو گرفتم خسین بگریو خطاب تا به خطاب افتاد سان پیغمبر گفت حسین گریو ند رهاش کردم حسین رفت توی اتاق لحظاتی بعد دیدم پیغمبر از اتاق اومدن بیرون یقه شون چشمه اشکالوده حال پیغمبرمون غربه من تصور کردم شاید من اشتباه کردم جلو حسین رو نگرفتم پیغمبر از این ناراحت شده پیغمبر فرمودن نام مثالمه حسین اومد رو زانوی من میشد میبوشیدم و میبویدم پیغمبر فرم جبرائیل ارز کردن یا رسول الله میخوای آشورا رو به نشون بدن دیو شروع خاک رو مش نیت خاد کربلا را جرایی به هم مثل من, من بیشتر باشه. هر وقت این خاد خون شد، بدرست این مدل کشته، هم مثل میگه حسین این خاد برای کربلا. و مدام انال اذیتش گرفته، آبادون نرو، فرمود مادر جون یادت چردم چیو.